بسم الله ببینید. فواصل اون بخش انتهای آیه است. ما میخوام بگیم این بخش انتهایی آیه گترهی نیست، با هدفی اومده. پس وقتی میگه بالله ما صابقی یه چیزی به مورد صبر قبلش هست. دقت کنیم، ببینید آیاد آیاد جهاد. جورا دم ساکت میخواد، جورا سخت خوب دیگه، درست؟ یا مثل وقتی میگم، الله و اللهو، ازیزان حکیم، بعض عید ارتباطی با عزت یعنی در واقع ندرت و حکیم یعنی بیان مطابق حکمت دور انگیشی داره به همین آیا در مورد غفور و رحیمه باز به همین صورت آیه در موردش یه چیزی داره که دلالت میکنه بر اینکه این که جایی اوفان بر احمد الهیه همین جور بطرهی نمید در, در میخوادیم قسمت آخر آیه رو چند میتونیم تقسیم بندی کنیم حالف هایان هر آیه با آغازش این بخش آخر آیه و اول آیه مقایستش کنید. نگه کنید بسم الله الرحمن الرحیم بخیم عوض بلله بسم الله الرحمن الرحیم. بخیم اولم يحل لهم کم احلکنا مطمع لهم وهم الوهون یمشونه في مساکنه هم اهل اکنها من قبل هم در زیاد بودن از آمتهای که یمشو في مساکنه هم در سیز خونه زندگی میکردن و علاق شدن از بین رفتند این نفی دارگل آیات افلای اسمه هم چی رو میدید اول آقایی در این مورد که ای بودند زندگی داشتن تو خونه هاش زندگی میکردن. امبیه اومدن حرف امبیه رو گوش ندادن نابود شدند بعد می چرا گوش نمیدید شما نست شد اول آیه و آفراهین همه درشون هست یا ایه بعد اون رو کنیم لا تدرکوه العبصار بسرها تواند درک خدا را ندارد آبا لطیف خبیل کسی که لطیف باشه بسر قدرت درکشا ندارد چیزهایی کثیف قابل رویت. ب. یارو. اما سوق الماء لآلعلد جرال فن بهی زرع و منه آن آماهم و آن اولا آفلایو بسرن. اولام یارو آفلایو بسرن. ها؟ ها؟ آواست ناس؟ بود؟ يارو يارو أفعل يوسف يا للذين الذين يعلون من نصائهن تربسوا أربعة بله للذين درسوا ماذا الذين يعلون من نسائهم تربسوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ونزم الطلاق فإن الله السميع عليم فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم در مورد إلاء كسانك إلاء كنا زنائشون مفرموت فإن الله غفور رحيم یه خطای مرتکف شده ایلا یعنی جدا شدن از همسر یه خطای مرتکف شده میگه غفوران رحیم و این ازم طلاق یه طلاق کنید فه اینالله دیگه اینجا غفوران رحیم که نیست سمیان علیم آیا واقعا شما قصد طلاق کردی یا قصد آزار همسر تو دارید بعضی از عربان زن می گرفتن. با خوش خوشن ازن چون نمیمد. تلاقش می دادند. بعد تلاق می دادند. هنوز که عده نگذشته بود رو میکردند. دوباره طلاق می دادند. از عده نگذشه رو جو می کردند. این زن بدبخت بیچاره نشوهر داشت نشوهر نداشت. بعد آیا ناظر شد که بیشه از سوار همین کار را ندارید. خدا اینجا می فرمون قصد طلاق بکنیم خدا سمیه. می میدونه شما قصد طلاق داری یا قصد طلاق نداری؟ قصد ایزا داری؟ قصد آزا و سوندن داری؟ گاهی اصاسا زید آیه از جنس صدره آخر آیه از جنس ابتدای آیه است نگاه کنید حب لنا نکلتر و حاب حبا وَهَبْ لَنَا عَوضًا لِلَّهِ وَهَبْ من لدنك رحمة إِنَّكَ أَنتَ الْبَصَاهُ سادروز يين أيت المنافقون أن تنزل عليهم سورة إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقين ميتارس ان الله مخرج ما تحذرون يحذروا تحذرون زي از جنسه متوجه شدید؟ صد در صد قال اني مركم مر قال اني لعملكم من ال منال قال قالیم صدر زیر زیر من قبلك الذين منهم ما كانوا به یست از زیر زیر از ساده گرفته شود. ممکن است زیر نتیجه صدر باشه، گرفته شو با یاس و فارماتوزی زیر از ساده نتیجه صدر است. این آیه را نگاه کنید. آزاد بله، و آیت اللهم یکی ازشون آیه خدا شبه. نسل منه النهار. از این شب روز را کشیدین بیرون کرد. شبی که هیچ روزی توش نواشه چیه؟ و اللَّمُونَ ظلمت نتیجه شب بین روزه تاریکی. یا ثمّا انشاء خلقا خلقا انسان بخشیدیم. خلق این خلق دیگه وقتی بخشیدیم خالق میتونیم خالقه. خلق باید ف... با... مفرموت که اه... انسان از نطفه خیال شده جعان نن نطفه في قرار مکین قرار داده شده بعد نطفه فعلق فخلقن نطفه علقه نطفه میشه علقه یعنی آویزو او علقه معلق خون معمولا وقتی که آویزون میشه در... میبنده درست قطر قطر میاد بعد, بعد خوش میشه بعد فقلقنال علقه مضغه خون بسته به شکل گوشت جویده شده این کباب و گاز بشه بزنید نگاش بکنید جای دندانتون افتاده این این میشه بعداً همین جای دندانو میشه ستون فقرات انسان عرض تو حضورتون... این قسم دوم درست؟ اگر اشتماع نکنه؟ قسم دوم قسم دوم نگاهش کنید. نگاهش کنید. یا یا قوم التبع المرسلین او دوده. اتبعو ملای اسالکم اجرن و هم محتدون. اتبعو محتدون. بر. چارم چی شو؟ چارم چیه؟ پایان آیه مَعناي آواز وایر تأکید می و مَعناي تازه هم نمی رسد. یا قوم التبیع المرسالی، التبیع تابیشید مفتادیم، و هم مفتادیم. یا الذين شرِّوا الذلّات بالهدا، هؤلاء که الذين شرِّوا الذلّات بالهدا، فما رب حتي جارتهم، و ما كانوا مفتادين. کسانی که دنیا رو آخرت را فروختن اینا محتدی نیستن دیگه معلوم هم چیز تازهی نیست الَّذین و به کسانی که زلالت را خریدن هدایت را بل کردن پس اینا هدایت شده نیست خوب منی و دیگه نیستن یه تحکیده فقط کسی که هدایت را بفروشه زلالت را بخره هدایت شده است؟ نه وقت وقتی میگه و ما کان و محتدی هدایت شده نیستن مطلب دیگه جدیدی افاده نم ان کذا تسمعوا المتا ولا تسمعوا السم دعا ادا ول تو نمیتونید کورها را شنا کنی که کو، کور بشه کرها را باشه کاری که خودشو به کری زده چهجوری آدم خودشو به کری میزنه وقتی که به حق هر پش کنه درسته حق را نمیخواد بشنبه نه ای که کره نه گوشش میشنوه خودشو به کری زده کسی که خودی کسی که کرے شما هر هی اینجوری میکنن هی میاد جلو ببین شما چی میگید درسته ولی که کسی که کار نیست خودشو کری زده اینجوری میکنن والله متبرین پشت کردید این پایان آیه را بخواید حس مقایسه کنید با اول آیه این چرت و داره ممکنه پایان آیه را بخواید با پایان آیه دیگه مقایسه کنید باز چند حالت پیدا میکنه یکی متوازنه که بگیم آیات کلمات آخر مثلا دعای هم وزنن و السماع ذات رجعه و العرب ذات صدعه رجعه صدعه یه وزن داره و نمارق مسفوفه و و ذرابی و مبثوثه مصفوفه مبثوثه وزن داره. کوی وزنشون متفاوته سجشون یکیه که بهش میگن مطرف مطرف وزن یکیه سج یکیه وزن م... بفرشه متفاوته سج یکیه و اللیل و ما و سق و القمر اذا تسق و سق وزنشون یکی نیست اما سیقافشون یکیه مَلَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارَ وَقَارَ باید بشه تَوارا بلی این اتواراست بزرشون یکی نیست بلی وارا سجرشون یکی شد گایی واجه پایانی آیه در وزن و یکسان ولی از نظر معنا معتضاد هستند که بهش میگن مرسع مرسع پلو میگن کردید؟ مرسع پلو مرسع پلو هر مختلف میرزن رو به اینجا بهش میگن مرسع مختلف و از یکی نیست سج هم یکی نیست نگاه کنید اِنَّ الْعَبْرَارَ لفی نعیم و اِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم بعد وزن یکی ساج یکی اما نعیم کجا جحیم کجا این علینا ایابهم، ثم این علینا حسابهم. ایاب حساب. وزن یکی ساج یکی، اما معناشون؟ گایی با جای پایانی آیه در وزن، سج، معنا یکسان است. همش یکیه. فی ها مرفوع موضوع رفع و وزعه. معنیشون یکی رفت کرد وز کرد. در سجشون هم یکی وزنشون هم یکی. فی فرقت فن و اله رب بکه فرقب هر معنیشون یکی. گایی واجه های پایانی های در وزن و سج یکسان و از نظر تعداد حروف مساوی است؟ اینا ها به شما متماسه دیگه یک کلمه هست وقتی آخر های یک کلمه ها کلا چون تعداد و هم یکی ها ببین وزنشون یکیه سج یکیه تعداد و هم یکیه در واقع میشن یک کلم. کلا این کتاب الفجر لفیس جین و ما درک ما سجینه. بار. یا افعم ملیتیم فلا تقط حر وزن تن حر وزن ساده. منو شنمیکی. چنانس نامز، چنانس بار. و آتينهم الكتاب مستبین. مستقیم مستبین مستقیم مرشون یک، مستبین بیان شده مشخص شده مستقیم درست اگر از حروف نزدیک شده باشند اگر از حروف نزدیک شده باشند بشه میگن متقارب مثل مجید عجیب بله، بعض از اون هم یکی عجیب عجیب، مجید، دال، با هر دو از حروف قلقل. و جیمام هم که مشترک خب، این در واقع انواع فواصل قرآن بخص اینجا مطرح شده در مورد سج در قرآن آقای در قرآن سج هست نیست و به هر حال این قابل کار نیست بعضی میگن این مال شعره و در شعر بش میگیم بهش قافیه در قرآن در نصر اگر کلمات حوض به کار بره در نصر از واژه سج استعمال میکنن پس سج و قافیه یکیه ولی سج در نصر استعمال میشه و قافیه در شعر نصر این نویه رو نگاه کنید عبدالله وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا من اَهْلِ هارون اخي. نه نه نه نه نمیخواد اینو برمتره کنیم پس هارون پیغمبر بواسطه است اون بس تمام شده وی آره متمام شد بگیم بکار رفته یا نه یه بس علمی برمتره کن این آیه برای نو که پس حارون پیغمبر مستدل هست. حارون به بباسد است، درسته؟ حالا این هایی بعدی کنید. قال و آمن نا برب العالمین و رب موسی و حارون. خب ما میگیم استعمال استعمال خوبی. آب ایمان آوردیم. سهر گفتن، اینا سهر جادوگرها گفتن. ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان، پروردگار موسی و هارون. هارون و موسی، موسا و هارون. صلوات باشه. اینطور به قادر سما شد. درسته؟ موسی به قمره. هارون زیدان سمت موسی سلام درسته؟ خب اینو نگاه کنید. آیه بعدی رو آو ببینید. وَعَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ كلمة چيه؟ تَلْقَ مَا سَنَعُو اِنَّمَا سَنَعُو كَيْدُ صَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى فَعَلْقَ السَّحَرَةُ سُجَّدَ قَالُ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُسَى أَبَلْ هَارُونِي أَبَلْ مُسَى اینجا چرا؟ باید موسا باشه رب موسا و آرون قاعده امینه راهی نیست مگر اینکه که بفرماید خاطر سجه اگر بانایی آرون آخر افتاد چون سج نون بود عالمین آرون دومی نگاه کنید حیث و ساج سج آه مخصوره است علف مخصوره اینجا به فهمت موسا و حارون نمیخونه هی تو عطا حارون و موسا وقت کنم بگه دو تا مثال دیگه هم جایی دیگه زده باشم برای همین مورد در قرآن استعمال شده به خاطر رعایت سج تقدیم متأخر شده پس میخواهی بگیم نه تنها سج در قرآن کار رفته بلکه بعضی جا به خاطر رعایت سج حتی تقدیم متأخر خلاف ظاهر هم وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّهُ لَحُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى بَلْ آخِرَةِ الْحُكْمُ بَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مبين؟ أَمْ, أم لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ بَلُولَى فلی اللہ اولا و الاخران اما احسن خاطر رایات ساعت یا ليس ذکر و کل اونثا ليس اصلا لیسا اونثا این میخواست پسر داشته باشه پسرشو وقف اعرام کن حالا دختر زایی بعد بگه دختر مثل پسر نیست نه پسر پسر که نداره بعد بگه این دختری که من زاییدم مثل پسر پسر برام نمیشه من نسل کردن پسر باشه بعد دیگه لیسل اونثا این دختر مثل پسر نیست می‌فرماد لیسل ذکر کان اونثا بعد این آیه بعدی رو لاجرما اننم فی الاخره همون اخسرون لاجرما اننم فی الاخره همون خاسرون به خاطر باز رایت الساجی آیه قبلشون قمص نگاه کنین باز به خاطر رایت الساجی که اکثر اومده در آخرت انسان اخسره یا در انسان, داخر... انسان خاسره باز به خاطر سهش آر آیت قبلش نیست آیت قبل نگاه کنید. کنیم سوریه هود 22 و سوریه 909 آیت قبلش هم نگار کنیم باز به خاطر آیت سهش اینجوری شده خب این از فاصله.